چرا زنها به روشنی نزدیکتر هستند آیا موانع روشن برای مرد و زن یکسان است آری اما برای زن احساس كالبد خویش و بودن در آن راحتتر است بنابراین زن به طور طبیعی به هستی نزدیکتر است و بالقوه به روشن شدگی نیز نزدیکتر از مرد است به همین دلیل است که در آموزه‌های ارفانی آن واقعیت استعلایی و قایی را به زن تشبیه کردند و در باره قد و قامت سرو او، لب لعل او، چشمان نرگس او و شب پر پرستاره گیسوی او داد سخن دادند. این واقعیت استعلایی به زهدانی کیهانی تشبیه شده است که همه چیز و همه کس را در خود به وجود می آورد، در خود می پرورد، در خود به دنیا می آورد و در خود حفظ میکند همان کاری را که زن به عنوان مادر انجام میدهد در کتاب داود که یکی از کتابهای بسیار قدیمی و ژرف جهان است نوشته شده تاو تا یعنی هستی که بیکرانست است و جاودانه حاضر مادر همه کائنات است زن به طور طبیعی به این تاو تا نزدیکتر است تا مرد زیرا زن تجلی کاملتر این ذات غیر متجلی است. به علاوه همه چیز و همه کس سرانجام به این منبع و این اصل باز می گردند. همه چیز و همه کس در تاو محو فقط اوست که باقی می ماند. از آنجا که منبع به عنوان مادگی تلقی شده است، در روانشناسی و اسطور زن را سرنمون تاریک و روشن هستی تلقی کردند ذات الوهی یا مادر هستی دو جنبه دارد او محیست و ممیت یعنی هم حیات می بخشد و هم می می وقتی که ذهن چیره شد و آدمها ارتباط خود را با واقعیت ذات الهی خیش از دست دادند آنها شروع کردند به ایجاد تصویری مذکر از خداوند در ذهن خیش آنگاه جوامع مرد سالار شدند و زن به عنوان جنس دوم تلقی شد منظور من آن نیست که اشتباه گذشته را تکرار کنیم و این بار برای خداوند جنسیتی مؤنث قائل شویم بعضی از فمینیست ها به جای اله از واژه الهه استفاده می کنند آنها می کوشند تعادل از دست بین زن و مرد را به نحوی دوباره برقرار کنند این عمل شاید در کوتاه مدت مفید باشد اما در نهایت چیزی نیست جز دلمشغولی به واجه ها, نشانه ها و علایم مفیدند اما مقصد نیستند باید به فراسوی واجه ها سفر کرد و در ارتباط با ذاتی قرار گرفت که این واجه ها و نشانهها به او اشاره دارند اگر به نشانهها بچسبیم و دل دلمشغول واجه ها شویم از راه و از مقصد باز میمانیم اگر به واجه ها و نشانهها بچسبیم آنها را به موانع و هجاب راه تبدیل میکنیم البته یک موضوع را نباید فراموش کرد اینکه فرکانس انرژی ذهن اساساً مذکر است ذهن مقاومت میکند برای سلطه میجنگد به نفع خود بهرهبرداری برداری میکند حمله میکند تملک جوست و غیره به همین دلیل خدای تورات خدایی است دارای ویژگیهای مردانه خدایی که خشمگین میشود و باید از او ترسید چون این خدایی فرافکنی ذهن مردانه است فراتر رفتن از ذهن و اتصال با واقعیت ژرف هستی مستلزم ویژگی های است، تسلیم، عدم قضاوت، گشودگی که به زندگی مجال زندگی میدهد و در مقابل زندگی مقاومت نمی کند. توان جادادن همه چیز در آغوش فهم عاشقانه هستی. همه این ویژگی ها به فطرت زن نزدیکترند تا به فطرت مرد. رقص زندگی با این ویژگی ها تحقق میابد. با همین ویژگی که میتوان قصه عشق را نوشت و در ستایش زندگی شعر گفت. در حالی که انرژی ذهن سفت و بی است. ذهن نمیتواند به اشراقها مجال ظهور و بروز بدهد. انرژی حسی لطیف و زیباست و در عین حال، نیرومندتر از انرژی ذهن است انرژی هستی در قدرت و لطافت به آتش و بال پروانه میماند مسیحا در عین انعطاف و لطافت و اریانی نیرومندتر از همه دشمنان زرهپوش و تا دندان مسلح خود بود ذهن است که تمدن ما را اداره میکند در حالی که هستی است که عهدهدار حیات بر روی کره خاکی ما و نظم و بقای همه کائنات است. هستی علیم و بسیر است و جهان چیزی نیست مگر جلوه او در آینه ممکنات. گرچه زنان بالقوه به هستی نزدیکترند، مردان نیز در درون خیش به هستی دسترسی دارند. در زمان ما بسیاری از مردان و همچنین زنان اسیر ذهن خیشند آنها خود را با فکر و دردمندی بدن خیش یکی انگاشتند این وضعیت مانع روشن شدگی و شکوفایی عشق می شود به طور کلی می توان گفت که بزرگترین هجاب مردها ذهن آنهاست و بزرگترین هجاب زنها دردمندی بدن آنهاست گرچه در بعضی موارد قضیه برعکس می شود در بعضی ها نیز هر دوی این حجاب ها با هم وجود دارند.